من آن به تو و منابعش الله من اسم الله الرحمن الرحیم لله الله علی رسول الله طیبین على جميع یه مقداری از بحث یه فکر مجرورشون خارج بشین چون اینجا مبحثیست که خیلی آثار داره راجعه به محمد بن همران که در روایات وجود داره و عرض شد که یه مقداری عبارات خالی از ابهام نیست این رو یک توضیحی داده بشین انشاءالله تعالی عرض کردیم در کتاب استاد در این جلدی که دست منه 16 ها، ایشان ایشان همیشه رفتیم که این ایشان طبق عنوان می زنند اناوینی که زدن یکیش محمد ابن یکیش با زیادی ابن عینه یکیشم محمد ابن بنی مولا بنی فهره یکیم محمد ابن همران نهدیه این سه تا چهار تا چند رو شد؟ چهار تا عنوان ایشان در اینجا زدن و من یه توضیح رو کرارن عرض کردم البته با متحمل در خود عبارت مرحوم اوستاد مطلب در میاد میخوام بگم در میاد اما به نظر من اگر تصریح میکردن و واضح تر میفرمودن استفادش به نظر من بود و آهدتر بود از کردم که ما در های خودمون در شیعه سه محور اساسی داریم یکی محور روایات ماست یکی محور کتب رجالی ماست و محور رجال ماست یکی محور فحارس ما مرمو ماه خویشو معایدن هر عنوانی که وارد شده بیان بفرماید اگر این نکته رو هم اضافه می برای استفاده علمی روشنتر بود می انسان خودش اما این روشنتر و واضحتر بود مثلا ایشون الان مثلا محمد ابن حمران رو فهموندن در اصانی روایت واقع شده و اصانی رو بردن. خب ایشون این جو کاشی می که به این عنوان محمد ابن را فقط تو مهور روایات آمده خیلی حضرت در کتابه هر برد این تحمیده میشه حضرت اینسان نگاه کرد یعنی به عبارت دیگر چون خیلی مطالب فقط با ایجابه و اثبات نیست با سلب هم تحمیده میشه یعنی محمد ابن حمران مطلق محمد ابن حمران مطلق در کتب رجال نیامده فهارسن نیامده اونی که در کتب رجال و فهارسن نیامده اما در روایات هرچی داری محمد ابن هم این میگه ایشون تصریح نبرموندن لیکن این مصدب خوبیه و از برکلن شدارن و مرارن اهل سنت دو محور دارن روایات و رجال ما سه محور داریم روایات رجاض فهانه در شيعه مهدوی و خون نقطه مهم این رد دادن مثلا الان اگر روشن شی الان بخاطرتون بیروز مثلا ایشون من خودی روایتش ننویشه بودن این الان براتون روشن شد که در روایاتی که ایشون 125 تا مرقوم فرمودن در کتب اربعه تماماً محمد نهمرانه هیچ کدومش قید نشده در کتب روایات به اصطلاح ایشان قید نداره اینطور که ایشون در بیان فرمیدن <تصفيق> <تصفيق> بله یکیلی یک مورد داره یک مورد از در روایات داره که قید داره در اونجا بوده در قیب شد. شده پس در موزن روایاتی که ما داریم قیب نداره و از اون طرف در کتاب رجال و فهارسه ها قیب داره این پس ما شد که از همه نواد خودتون رو آماده یک حل مشکل بکنی که این محمد نهم همرانی که قید نداره کدوم یکیه این تا اینجا دیگردن مثلا به بعدی که حرض کردیم خوندیم پس محمد ابن را در روایات 125 که ایشون دارن فرموندن در کتب عربه قید ندارن و اما دومین عنوانی که ایشون مثلا فرموندن محمد ابن همرانم نه احیم که این قید داره به سر احیمم این عنوان محمد ابن همران نعیم رو من اجمالاً مخواهیم بعد تفسیر شما آلشه در فهرز پس این در فهرز با این عنوان بعد در رجال با همین عنوان بردی هم در رجال با همین عنوان دیگه چیزی دیگه نم نبرمودن از این مطلب معلوم میشه که در روایات ما محمد ابن همران نعیم نیست انصاب شده همینجا در کتب عربه نداریم در کتب عربه یه مورد حالا با یه جوری هست اما ما محمد ابن را نعیل در کتب روایات نداریم در هیچ روایات ما با کلمه بنعیم وارد نشده بله یکی فهرست یکی شیخ، یکی هم رجال شیخ یکم رجال برگی در دو کتاب رجالی و یک کتاب فهرستی آمده این اجمال از هزنه اگه باید توضیح ده محمد ابن همران مولا بنی فهر هم فقط در رجال شیخ آمده هیچ جای دیگه نمیده مولا بنی فهر این راجبی این محمد ابن همران نهدی با این عنوان محمد ابن همران نهدی با این عنوان یکی در نجاشه آمده که فهرسته یکی در به اصطلاح یک روایت واحده در صدوق آمده که ایشون ننوشته شما افکار حیعت در روایات هم یکی داریم یک دان در روایت محمد بن همران نحلی داریم این هم داری اما در روایات خودمون در کتاب رجالی خودمون محمد بن همران مولا بنی نهدم داری ایشون اروان نداریه محمد ابن همران مولا بنی نهر متاسفانه آیخوی هم اون عنوان ندارن باید قاعده عنوان نیزدن شیخ توصی هم تو رجالش محمد ابن همران داره تو رجال شیخ توصی. این هم تو عنوان سابق و در زیر عنوان محمد ابن همران نهری نه اون آی اینم هم اشتباه هم و فنی این روشن نیست یعنی ایتون وقتی عنوان میزنن باید دقیقاً میگنی این عنوان در کجا آمده پس محمد ابن همران این یک در یک رویات واحده آمده در کتاب فقیق دو در رجال شیخ سوسی آمده سه در رجال خیخست نجاشی آمده محمد بن همران ان این این چنده شد چهار تو عنوانی که ایشون فرمده یکی محمد ابن همران مولا منی نه مولا این فقط تو رجال برگی آمده روشن شد این مجموعه ای اناوینی که ما داشتیم و مسادر است. مثلا محمد بن محمد محمران مولا عبی نفت تو فیخست یا تو کتاب های فرصان ما نیامده اما در رجال برگی این دکتر رو ارز کردن چون خیلی در جمع بر شما کمک میکنه که این شخصی که الان دنبال شدیم چجوری او رو شناسایی بکنیم این راجع به اناوی وقت نقطه خیلی مهم که در اینجا برای اصحاب ما منشعت مشکل بزرگی شده در دو فهرست معروف ما که فهرست شیخ و فهرست نجاشی باشه مشکل اونجا شده در آن حالا که فهمانه رجالی خیلی اهمیت درست نکنه چون در فهرست نجاشی آمده محمد نهامران ان نهلی در فهرت شیخ خامده محمد, محمد ابن همران ابن و هر کدومشون به همون عنوان اکتفا کردن ایشون فقط ابن اعیان عورده و اون فقط مهدی عورده این مشکل کار روشن شد هر کدومشون یک عنوان عوردن عنوان دیگری نه عورده یعنی هم نجاشی یک عنوان عورده هم شیخی به عنوان در فهرتشون و این بحث میاد که محمد از محمدان صاحب کتاب بالاخره کهیه و بعد چه کار بکنه من از کلم همیشه یک یه, یه تحییل بدیم چی شده از این؟ چرا این پیش آمده چرا این کار پیش آمده چطور شده نجاشی گفتر نهدی چه گفتر نهدیم هرزان که این راجب خلاصه بحث راجیه به محمد ابن همرانی نعید ارز کردیم دیروز روز شیخ خوندی ایشون از رای فهرست نبوت بوته کردن در رجال هم دارن محمد ابن همرانی نعید مولا بنی شیبان ارز کردن خاندان زراره همه شیبانی هم یعنی به ولا اساسا اهل ترکیه بودن هومی بودن و هم در آمدن به کوفه پدرشون اگر اینا خودشون رو به اسلام بفرد. ما به فارسی پیمان همپیمان همپیمان کردن یا غلاق به نحر غلاق متصل کنن به بنی شیبان به شیبانی ها برقی هم همین عنوانو داره محمد ابن همرانه نهیم آقای کوی ابول عبولو من بیشتر به عبولایشو نظر دارم لم هر از النجاشی به ترجیمه محمد ابن همرانه نهیم متعرضه اشاره نشه ترجمه در دستور ترجمه فهرستیه ولا کتاب رجاله تراجم نیست مثلا کار به باشه تراجم نیستن تراجم غیر از رجاله فهرست و نه نماز اگر محمدت اموران نهدی کمایتی گفتیم اشاره کرد ولن یتعرض شیخ این کتاب من اینجور چاپ شده شیدن این کتاب آی خوئی رو آخره چاپ دیگی کردن غلط‌هاشو تصحیح کردن اینجانب کی سر وام می‌ذارم یا نه یا تو کامپیوتر هستن؟ این ولن می تعرض شیخ غلط ابولا خب می تعرض شیخ محمد بن عمران یه چیزی افساله ارزش من تو حاشیه خود اندیشم ولن می تعرض شیخ به محمد بن عمران ناهدی حتما این تو بودی آقا ولن می من نظرم و حالا یک شفا ان اتحادیه ها این خب ایشون تحلیل نفرمودن چرا بکنید فقط ایشون نتیجه گیری کردن پس معلومه این دوست تا یکی هستند نهدی با ابن عیل یکیه مبینه میشه یکی یکی بیاد یکی یکی بیاد این اتحاد هم اینشالا عرض میکنه. آئل داری ما در رجالی خود جامعه روات قارب اتحاده اینشالا میگم ایشون میگیش کن چون راوی و مرویشون که مثلا شیفی که را اسم داخلی. نجاوشی یکی را اسم ورده آخری این نمیشه لأن النهدي لأن النهدي و شیبانی متقایران و من المتننده ان کل کتاب له واحده مثلا اونورا بشی کتاب علی یک نفره کتاب محمد بن عمر خب ما دو نفر بشی محمد بن عمر النهدی نمیگه محمد بن عمران نهدی دو تا باشه غایت ما هستند روایات ایشو مشترک ما ببین دو نفر این محمد بن عمران النهیان رسم توثیق نشده فرقش اینه اون یکی نهدی رخمان ترس و نجایی که و من المطمئنه به انال کتاب لباهده یوسما به محمد ابن همران قد اعتقدر نجاشی انهو محمد ابن همران نهدی اینم هم دقیقه تحلیل حدید توصداد نجاشی اعتقاد بشته ایشون نهدیه و اعتقدر شیخ محمد ابن جه امران شام کردن همران بردوش وازنه دیگه مولانا قدر بسید محمد ابن خمران ابن عیم شیخ هم نظرش نیمی بوده و ظاهر انمازکره هم نجاشی هو از صحیحی ایشون تمایون دارن که اون استظهاری که نجاشی کرده همون صحیحه یعنی نهلی باشه شیخ اشتباه کرده دیگه میگنم ایشون تحلیل نکرده که حالا شیخ و نجاشی مثلا رو چی جهر احتفاظ پید برکنم منشه احتفاظشون بوده بیشون حالا جیه مرحوم استاد رو میخونم با یه از خودم که واضح بشه ولک کو فیزانک ان الملکول فی به کثرت محمد بن عمره من غیر سفیه از هم اینجوری درسته در, در کتب اربعه غیر از یک مورد در کتاب خرو تماما محمد بن عمره غیر و غزنهه انه ابن ابی و ابن ابی نجران و علی ابن اسوار درست حالا شاید نظر مورده ایشون دیگه باشه که از این روغات اجلایی که ایشون داره ما میتونیم بفهمیم که این شخص شخص بزرگواری هم بود مثل ابن عبی عمی و ابن عبی نجران و علی ابن اصفاد که اجلای اصحابه از این شخص نهار کردیش اگر مرادشون این باشه ما از این عبارت بهتر بود در اوائل امالی صدوق مجلس دوم امالی صدوق حدیثی که نمیترستندش منطقی میشه به ابن عمر بعد اینطور میگه میگه حدثنی جماعتون من مشایخنا من همه شامن سالمون جمیلت زراع زراع شامن سالمون محمد ابن عمران یعنی محمد ابن عمران یک شخصیتی که مثل ابن عبی عمر تبدیل میکنه رو به شیخونها مشایخونها اینقدر این شخص روزورواره که مثل ابن عبی عمران خب یک مزید البسطو دو وکلال که صد و قدس سر و سر رو ذکرت مشایخ طریق او در مشایخه دو تا داره یک طریق به محمد بن عمران و کمی با هم داره و لم یغیر این محمد بن عمران در طریقش به نهدی یا شیبانی بعض در خود همین کتاب مشایخه در بحث این شیعه یک طریق به محمد بن عمران سناها داره و طریق او علیه همان یعنی در دو مشترک، مرحوم صدوق پدر از سعده ابن عبدالله اشعری قومی که از اجلاست ان یعبوب ابن یدین از بزرگان علمای برداد ماست راوی آثار ابن عبی عمر ان ابن عمر آن عمر ما. و ذکر طریقین آخرین الى محمد ابن عمران نقصه مشیخ دو جا داره یکی محمد ابن عمران و جمی با هم یکی محمد بن نهندان تده هایشون ها. نفسی در مقابل با کسی نیست. یک طریقش اینه ابو صدوق پدر از علی بن ابراهیم از پدرش ان محمد از محمد بن نبی امر انه از که این طریق محروف قومی ها به کتاب نبی امر طریق محروفشون هم اینه نصفه بوده که ابراهیم آشن به قوم برده شرحان شد دادن طریق دوبام و ثانی همه محمد ابن الحسن که ابن الولید باشه ان محمد ابن الحسن صفا بزرگا ان ایوب ابن نوح و ابراهیم جمیعا ان صفوان و ابن عبی اومد جمیعا انو پس اونده یه راهی که مرحوم صدوق داره منتقی میشه به ابن عبی اومد چه در طریق مشترد و چه در طریق مختص اونه که در روایت آمده عنوان صدر تاییدش آمده ابن عبی امیر البته سفرکارم هست من اگر آقایم یاد نباره که باشه دیروز ارز کردم دو نسخه از این روایت در قوم بوده یکی روایت احمد عشقری و یکی هم روایت احمد برگی اسمی دو بزرگوار، لیچیک از این طریق صدور نیست فکرس از کردم که میخونم بعد ولذا به احتمال عبی به � مغلوم صدوق از مصدر دیگه این که تو اسم این دو بزرگوان احمد عشقی هیچ شد در اینجا نیست خب پس تا اینجا مقدمه روشن شد پس شیخ صدوق در مشیحه دوبار اسم برده اونم مطلقه و اما وقت خالفه تقیی جزی یک بابت و سعر محمد ابن همران نهبی و جمیل ابن در راج عبا عبدالله ایگه در راج هم یه موردم هست در کل کتب اربعه فقط ما این یک مورد داریم که تفصیه شده به فید نهلی همش مطلبه فقط هم یه مورد من باید و ها و یه دول قابل رجع ایشون میگه این دلالت میکنه الان محمد ابن همران الانزی زکره هلمشیخه و یعنی های نهلی اومد هوه محمد بن همران نهلی یعنی معلوم میشه با این شیوه در مشیخه مطلق آورده اما در متن کتاب مقید آورده معلوم میشه مقید و مطلق یک خوب خودی خود همین چی میگه اینو به معنی اینکه در یک روایت قید نشده روایت صلوات داره از محمد نام داره متعذل داره هیچکدومش هم قید نداره مشیخم دو بار داره قید نداره اما تو روایت تو یک جا شیذ داره وقت از این قیدشونو اینو فهمیدید که محمد بن احمدانی هی در مشیخها سام و اونم دیگه فقیه اون هم بعد بعدشون یک درجه بالاتر هستند، این نوشتن اینجا هر جا محمد بن احمدانو مصلحه، اون هم نهضیه. اول بعد فقط مشیخه و فقیه بود. حالا بگیم در کافی، در تهیه استفسار، هر جا محمد بن احمدانو مصلحه، اون هم نهضیه. این استفسار ما هم اول چون در مشکه دو بار مطلق آمده در فقیه هم چند بار مطلق آمده یک بار مقیده به نحبی آمده این یک بار برای تقیید مشکه سالیت داره, داره. اگر مشکه تقیید خود روایت فقیه هم تقیید میخوره اگر اون خود بقیه روایت هم تقیید میخوره تردیب تقیی و استفساد و اما محمد ابن همران نعین فلم یوجد لبولا روایتون واحده مذل روتی درش محمد بن عمران راست میگه در روایات ما ابن عین نداریم در اصول اربعه و انا ما ذکرنای ترات اند محمد بن عمران الوارد الروایات الكثيره هو نحوی از ثقه الاتی خلاصه نظر روتی چون که یک نفر رو اون نحویه فردا متعرض طریق شیخ یه عنوان دیگه ما عرض کردیم محمد محمده نهامرانه مولا بنیفه این فقط در کتاب رجال شیخ سوسی آمده بعد نشه و لیسه ببنه اعیم این لیسه ببنه اعیمشه به مال استظهار خود شیخ یا اون مصدرش بوده اینجور جو این نشه ما همچه اسمی در کتاب نداریم مولا بنیفه بهی نداریم و این عباره محمد ابن همران مولا بنی نهد رفیح نهد این در رجال برقی داریم ولذا انصافت احتمال میدیم که عبارت شیخ تصحیف شده بنی فیح بنی نهده روشت نیست این عبارت شیخ این هم البته خود شیخ محمد ابن همران نهدی اینجوره محمد ابن نحمران نهی کوفی یا ابو جعفر برزازان اینم داره کوفی یا ابو جعفر برزازان تا اینجا اجمالا روشن شد راجعه به ابن عیا و نهیر پس بنابراین مرحوم برقی اینطور داره یکی محمد ابن نهیر ایشون نوشته روشته محمد ابن نهیر خود مرحوم نجاشی مرحوم برقی مولا شیبان و محمد ابن همران مولا بر نهد معلوم میشه این عبارت که اگرم نهدی باشه اساسا عرب حسیل نبوده به اسلام غلا بوده به نهد غلا و هم قیمانی باشه عبارت مرحوم شیخ نجاشی رو هم بخونیم نجاشی اینطور داره محمد ابن همران نهدی ابو جعفر سنتان نجاشی غالباً انصاب رو متعرض میشه اینجا متعرض نشده ظاهر عبارتیشای میشه ایشون مولا نیست لیزان این منشع شده ادهی باز بین این و اون که مولا سر بگذاره سه قطعا اون یکی توصیم قداشت برساد ابن رایی خوفی یا لحنس نظر جدگرایا جدگرایا از روس‌ها هم بوده که الان ببین اسمش نیست اصلا جوش دیگه نه امکان حالا نیست. من دیگه هزار سال چشمه سر نیست مثلا 900 سال مثلا. من ماچو بولدا همیشه برای زمین دست خراب شده. جزایریا به صد در مجموعه بوده که در اصلاح اون زمان نهرواناتشون گفتند. 이게 از نهروانات هم جز جز جزایریاس که رضی کی دجاست و روا ان ابی عبدالله علیه السلام لهو کتابو، یک کتاب اون خوب دقت میکنی اخبرنا احمد بن محمد دو تا احمد بن محمد در این طبقه هستن هر دو استاد نجاشه یکی معروض بوده به ابن جندی استاد نجاشی سردادیه یکی هم بوده به ابن سد هر دو احمد بن محمد و هر دو از ابن عقده نرمی کنن طریق نجرسی به ابن آقوده هست اما ابن الجندی رو شیخ درک نکرده شیخ تلسی درک نکرده اگر مراد احمد محمد ابن الجندی باشه این سند در اختیار شیخ نبوده اما شیخ ابن سبت درک کرده از این دوتا استاد یکیش درک کرده که ابن سبت چون چهار ساز روحات شیخ چهار ساز هشت به برد برد برد اون یکی چارسد و یک وقاتشه چه خود درد نکرم چارسد و و احمد ابن محمد قال حدثانا احمد ابن محمد ابن این این این سال خیلی مرد بزرگواری زیدی ایشان و اخباری مذلکه و لکن از اوئیه علم به اسطلاح معروفی که بیشون بوده صد هزار حدیث سد هزار حدیث, حدیث رو سنه رو و سنرم مثلا خیفتش و در شیستصد هزار حدیث نظر می داده خدا که رو به سبت من هم ابن عقده قال حدثنا علی یقنال حسن اگر آن خواستم بردات حسیل رو این علی ابن حسن در مشاهیخ ابن عقده ابن فضال پسر ابن فضال پسر اسمش حسن تا بچه داره این علی از همه مشروطه علی ابن حسن این ابن فضال و ابن عقده ازش نهاره آله حدثنی علی بن سالم اینجا علی بن سالم نداشته اما به نظرم کنون خیما علی ابن اثبات داره نیست کسی همان ریزر نجاشی مقابلش نیست اینجا علی بن سالم نداشته به نظرم داشته به نظرم داشته به نظرم برد چاک شده محمد به من علی بن اثبات بود اشون رو مروف از دخش اینکه این آی خوضا رحمتش کنه مرمون آیه به اصطلاح توستری اواراست بل علیه به اصباته حدیثان علیه اینجا درست، اینجا چون ناقص نخواد اینجایش حالا این بشت اصطاقه نه اختبار این علیه مثابت از سالم شاید چون من یه توضیه هم هست کرده نسخه که از نجاشی نسخه بسیار مبتزلی بود من دیده بودم کتابیشان به خط خ خطشون عبارت نجاچی ننوشتن دو نسخه از کتاب خرده بودن دفتری بود دفتری سوال دیدیس فاید دو نسخه خریده بودن و برق ورق ورق هر ترجمه ای رو به اصطلاح خودشان بریده بودن کس اونده بودن دیگه میمیخواستم بنویسن دفتری نوشتن سالم نوشته؟ ها این درسته این درسته واضح بهتر بل... میام علیه من اصبات دهنید نباید سالم باش. این من نسخه نظر خیلی بود بازاری صرف هر دوشه نداشت لذا حالا نسخه غلط فی دهیزی یوم در دهیز ده منزلشون هشه شب شب چهار شبه... شب گذشته از سال دیویست یعنی علی بن اصبای در این سال به علی بن حسن فرزال حدیث کرده آل حدیث ما محمد ابن همران محمد ابن همران به من این کتاب به تحدیث کرد البته محمد ابن همران چون زمان امام صادق درد کرده پدرش از حوارین حدیث فجاده قاتن با در سال سال پنجمه سن سی چه ساله باشه یه مقضاری فاسته کمه فاسته با بیش باشه وله حاضر کتاب رواتون کثیره این کتاب روات زیادی داره. احتمالا ولی بله علم و اندالله مراد نجاشی از این عبارت نظر به روایات خواهش شغل در فهارس نظر به روایت ندارن چون در روات ابن نبی عمر، ابن نبی نجان علی ابن خیلی دارم در روایت اشخاص یونسیب نبز رحمان حضر محمد ابن نخوندان نرز میکنه این عبارت مرهوم نجاشی روشن شد بعد ایشان بعد ایشان این طور وقدر عرفت اند تاریخ صحیحون و ذکر اند محمد ابن همران الذهی وقعی فی اصانید کسیر من الروايات. اون محمد ابن که در اسناد ادهی از روایات وارد شده همین نهبی سخه هست و در اون ذیل عبارتی بود یادم راهی خواندم یا نه و هم ما محمد بن عمران نعیم کلام یوجز له و روایتون واحده ها به عنوان محمد بن نیست. روایت نیست و تمام این روایت ها هم تو این بر نحوی چه غیر ایشان ترجیح کلام نجاشی داده در کتاب قاموس قاموس کتاب بسیار خوب دلاور رجالی بسیار, بسیار بسیار کتاب مفیدی است هفت که این قانون بر کتاب هفت تنگیر مرمون ممقانی نوشتن رضوان الله علیه همه هرداشون فوت کردن هر جیشون که خاله مرادش ممقانی است اگر مستنلا می نوشتن خیلی فوالش بیشتر بودیه راهی هم تون میشن عبارتی که مناسب نیست نصور در مرمون ممقانی به کاره بود ایشون در همین صفحه 238 در جلد نویی که الان چاپ شده جمعون در آن در یک دیل عبارت چون محمد ابن نهمران جدش نام برده نشده راست در روایت فقط محمد ابن نهمرانه یهتمل که اراده محمد ابن نهمران نه ایشون موسی یهتمل کما این که نجاشی لعنوان هیزا نجاشی من رو هایی توستوی خیلی عبارت عربی خاص خود ایشونه عربام چسته ازم نگرد کما از من نجاشی لعنوان هیزا چون اینجا عنوان نهانه مستری گر نجاشی چون اون عنوان رو برده این عنوان نهدی رو برده بدل حاضا به جایی که بگه ابن عیم نهدی رو برده یفت همومن انا عقیدت ها انا ذال کتاب ذاک از عقید نجاشی این بوده که صاحب کتاب ها نهدیه لا حاضا نه ابن عیم ول, ول مشیخه مرادشون از مشیخه در اینجا مشیخه صدوقه نه تحضیب اشترس <تصفح> ول مشیخه کل اخبار به لفظ محمد ابن راسته فقط در یک مورد اخبار محمد ابن همران داریم ولی همه محمد ابن همران مطلقه اما خود ایشان خود محرومه های به ساتوست داری ولا یبعوت اصحیت و عقیرت شیف فلفهره عقیده شیف درست باشه حیث و امهو اعرف و بله اخبار چون اگر داره هم بشه به این نجاشی و بین این شیخ به اخبار اخبال واردتر نجوشی به لحاظه فهرست بهتر اما شیخ به اخبار اخبال واردتر مردم میشه شیخ اقیده شده که ایشون ابنه این نجوشی اقیده شده اقیده بعد قول جامعه رواس برده اما قول جامعه به اتحاده ما رواس کل از این ما هم و کونه ما کوفیی کوفیی این قابل اعتماد نیست بعد در زید عنوان بعدی اووردن از عرف دفت سابقا مختصار شیخ فهرس علا ذاک ذاک مراد شیخ ابن عین و نجاشی علا هازا یعنی نهدی یدل و اختلاف فهمه ما سی محمد ابن همران در کتاب این دلالت بر اختلاف سهم این دوتا در کتاب میکنه ورده آخر هم گفتن الا عن اراد بعد اینکه امضاء روایت تم اوردنشون الا عن اراده نهدی به ما به به حاضرین موارد کم کمدع اوغ آغنجاشی... نجاشی غیر معلومه است یعنی نجاشی نگفته که در روایات نجاشی بحث فارسی دار از نظر به روایت شد از عبارت بر روایات و کتاب کشفیه این جور مثلا استفاضه شده الا نجاشی که اصلا بحث روایی نداره حالا ببین روشنگری کنم برای شما پس یک مقدار اطلاق ایست که ما در رواجات داریم که قید نداره یک مقدار اساسی اساسی ما اختلاف شیخ و نجاشیه با قول مرموم استال و قول داید مرمومات شیخ فهمیده ایشون محمد ابن نه نهگه نجاشی فهمیده ایشون محمد ابن همران نهگیه حالا چرا فهمیدن؟ یا آلوز ساکت شدن هم گفتن اینجور فهمیده؟ اون آقایی دو فهم میگه مرحوم آیتوستری میگه که حق با این از که شیخ تبدیم بشه پس در مطلب را بگه ابنعیه یا بگیم جا ابنعیه نیم زراری آقایی کنگه هم با نجاچیه پس اون مطلب همون نهلیه جامان رو باتن گفت هر دو یکی هم نهلی و شیبانی یکی هم هر نمی کنیم زراری یکی هم, هم دیگه دعوان نداره چون شیخ میگه که من اونور ده نجوش بیه اون ما خرده اونها یکی دیگه هم هست یه راشه اینه که چون اونجا داره روا محمد بن عمر را نهری با جایی که مشترک نهریه جایی که منفرده فقط محمد بن عمر اونجا عین زراعی اینم یه راه که بازاره رفته این راه راه دیگه همون راهی که خیلی از جایی قاطن میره از اینجوری چند طرفه باشه که مشترک میشه محمد بن عمر مطلق مشترک میشه با اشتراک می میکنی حکم میکنیم اگر این میکنی آدر بیاد که سقه هست چون نعیم توسیقه هست فرید همه اون آدر داره به مشترک میشه و رباید از حجیه می این خلاصه ای بود از این مسئله و واقعا هم بگیریم و بیان الله خود رو هر چی اختیار میکنیم اما انصافا یه بحث مشکلیه که از بحث مشکل رجال ما همینه مغلقه اقلاقش به خاطر این که پیدا شده. در اینجا به وجود آنه هر صورت خدمتون که اینی که آقاین برداشتن مرموم فرموندن عقیده شیخ این بوده عقیده نجاشی این بوده فهم اینا خب کم گذشیه در, در حقیق نه شیخ عقیده خاصی در اینجا داره نه نجاشی مشکل این نیست مشکل در حیقت این بوده نجاشی در فهرست نبوته دیده مثلا فهرست نبوته پیش نجاشی بوده چند داره درامه نهرس نجاشی به فهرستان بودت سو ازن داره اون رو درست نمیدونه یا فهرستان مهاروها قربتون کسی خب بقت بکنه نه این که خیافی علمی ایخوفی لکسی های شیخ بوده نجاشی هم بوده. نجاشی هم بوده و حتی جالب ترجمه شده باشه اصلا نجاشی با یه واسه واحده فهرستان هم واسه اون فضل چون نجاشی اون فضل دیده چون نجاشی بچه وقتازه عبال مفضل نظیب 20 سال قبل از آمدن شیخ خوب شده بیش از 20 سال اما نجاشی عبال مفضل دیده آثارش هم نه رو چون خود عبال مفضل هم من دیگه رو هم نمی کنم پس در حقیقت اشکال نجاشی این سه دو تا نه یکی یک خود کتاب زعیفه دو راوی کتاب عبال مفضل شیبانی شو ضعیفه. زعیفه روشن اما وقتی میبینیم شش شهر می میبینیم جماعت من از ها و محرق مفضل ایش آسان شاگر عبال مفضل میهیم ایشون به واسطه آثار عبال مفضل نعبون میکنه تخت کردیم؟ ایشون به واسطه آثار عبال مفضل نعبون میکنه همون اثری رو که شهر سوسی با واسطه عبال مفضل این از خلی عبال مفضل در اختیار نجاشی بوده نجاشی دو اشکال داشته این فهم نیست عقیده نیست تجب از آیون ایشون داره مسترشه مسترش. اجازه فهرست ابن بس در فهرست ابن بس هم محمد بن حمرانه نه ایم خیلی واضح این عقیده نیست که خبشن تو چی از این ماله مرمو میشه نجاشی چرا نیابورده چرا عقیده نداشته نه این که عقیده نیست اعتقالی به سهت کتاب نداشته یک اعتقالی به تریح هم نداشته مثل این کسی بگیار این کتاب خودش هم ضعیفه این چاپ که که در بیروت این چاپ هم خودش خلال خلال روز زیاد خود کتاب فی نفسه درستی هم چاپه خرامی زیاد داره اشکال من به نظرم روشن شد اشکال نجاشی عقیده نیست فهمی کتاب فهرست ابن بطر رو زعیف میدونه نسخه ابو مفضل رو هم درست نمیدونه دوتا اشتار رئی الله این کتاب در اختیار نجاشی دهده چون شیخ به واسه از ابو مفضل رو نمکن نجاشی مستقیم از اول مفضل رو نمکنه بهتر شد تسریه هم میکنه تجنب کن روایت ام من نزدهش نقوم میکنم این ماله جناب های از شیخ روزنش رو و اما نجاشی خب وقتی تصریح می کنیم دیگه و محمد از ابن عقده اصلا این مسترش با اون از زمین تا کنه؟ رو فهم نجاشی کتاب محمد ابن عمران رو از کجا نیده از اجازه ابن عقده خوب دقت بکنید من ارز کردم که رارم رو ابن عبده ظاهرن کتابه چه یعنی کتابیه که شخص نوشته برای تروحش به کتب اصحاب،, اصحاب و رمایا در اصحاب و مخاطبه خاصی نیست. سریف کرده. خود من کتاب قرآن بی خیرا کتاب قرآن نیست. مثل درس شیخ شمسید درس نجمی. اجازه تریعش به کتب هست اما مخاطبه خاصیه. که آقای فلانی از من خواسته اجازه خودم میگیرن آقای فلانی بده اجازه کتاب محمد بن از اینجا این کتاب از اینجا این اجازه بشه. پس مرهوم نجاشی اعتمادش بر فهرست ابن, بوت. ابن بوته نجاشی اصلا از اون راه وارد نشده اعتمادش بر اجازه ابن عقده شواهد ما نشون ندیده که ابن عقده اصلا فهرست داشته اجازه داشته فهرست مرمیز داشته پس دو تا مسئله حالا اگر بخیر یک کنی اینیتر در از صحبت بکنیم این محمد بن حالمای کوفیه دفت میکنیم نجاشی به شیخ هر دو بغداد هم. شیخ از طریق عبال مفرزا رفته قوم از طریق ابن بوتا آمده رو این کتاب. کتابه. این رفته قوم از قوم آمده به بیراز کوفه. مرمو نجاشی از طریق ابن عوضه که ایشون هم کوفیه. از طریق ابن فرزا که ایشون هم کوفیه. از طریق علی ابن اسفاد که اون هم کوفیه. از محمد ابن همراه. پس این دو تا کاملا با هم مختلف هم نجاشی از راه کوفه رفته چیخ آمده از قم از راه قم رفته بست عدیده مفرح نیست بست پرم مفرح نیست بستش ریشش اینه در کتاب مرحوم در کتابی که از ابن اجازه اجازهی که از ابن عبده بوده توش بوده محمد ابن همران نهوی تو فقره سر نباته بوده محمد ابن همرانم نه اگر هر کدومم یکی رو آورده صرف اقتفاهم همینه این نیشی یکی آرون یه یکی آورده باشه این پاکی که فهم ها یه چون وقت آورده من یک فرید کلمه کمتون سوالشون فرمینده از دو تا راوی مهم برای کتاب ابن 19 هست اینا در بغداد بودن یکی ابن جندی یکی ابن سن ابن جندی قبل از آمدن شیخ فوق شده لذا شیخ اجازه ابن جندی رو در این کتاب های ابن جندی رو به واسطه یک انسانی که میشنسید نام ابو ابن عزور ابن عزور رو نکنه از او را میکنه اما نجاکی خود ابن جندی رو دیده و ظاهرا ابن جندی بود اجازه تحدیس داده یعنی گفته تو شیر خونفل حدیس اجازه تحدیس نرم بکنه و اما ابن سلف هر دو دیدن زواهر عمر نشون میده که در اجازه ابن سلف نبوده و شیخ هم نمونی فقط تو اجازه ابن جندی بوده زواهر امر این الان. برای احمد از محمد مشترک بین حدوست انصافت خیلی مشکله لیکن از این که شیخ نیورده کلن اون رو شیخ رضوان با سالانی ظاهرن که درس نکرده ابن جندی رو قطعا نه که ظاهرن ظاهرن در کتاب ابن جندی چون خودش مستقیم نرده کرده از او اعتماد نکرد در کتاب ابن سلط هم نبوده و اصولاً خود ما هم اجازه ابن جندی رو بهتر از اجازه ابن سلطن دیریم فرزن اشانا توضیحش ارزو صلی الله علی محمد و آله الطاهر. یا دیگی در شکل خودشه پیدا میکنه اختلاف در کجا این مراد او یا ظاهرا مراد و یعنی ظاهر او. من من يعني في مثلا ابن عبی راوی کتاب ان في من نجاشی که ذهب الى زیدیه و فتحیه و من مثلا احمد المحمد و ابن عبی عمر من ها الاجلال هم يبقى. هذا ها مثلا و نسخ کثیره و بیردیه من فرقی من نبی عمر صفرام و نسخ کیف اکتفا بخلیم الزیدیه لذا کم واحد هو المفضل و علی بن اسواتم علی اللہ خان فتحیم سحینا روای صالح امامیان يحتم فاعتماده و علی هذا بعید عجیب جدا اعتماد و علاهادت قدیل عجیب انجام فلیده یبقا ها در احتمال مراد و رواق اله ها در کتاب نظر ایلر روایات قسمت به روایات علی ابن اصفاد موجود نبی آنه موجود صفوان لاییو جد مثل اله يونس بن عبد الرحمن موجود عبد الرحمن بن نبی نجام جمعی بزن اجلا الاسخاب موجود مو روایات آده فمن المحتمل نظره ایلر روایات و کلید انصافاً موافقاتنا على تناول وريه مشكله الشوارع في السلام الشوارع قاعده ان هم حضرنا والله بنعنا الشوارع وشان الشوارع كان مهم ده همین نتیجه رو زمان نگرفت. اون باشه. من که داشت شما که نه اضافه چرا ما نظریه کینو چون این روایت به عینه هم در کتابه. به عین یعنی با همین محمد بن امام و هم در کافی و پیش از یک مسئله. در هیچ کدومشون نه دین شما محمد بن من تعارض شدید روز محضر کردید همون بسه این از هر طرحی در درست این درست برشین ما درست ما و قیده میکنی که این نه بیادید بله من هم عقیدم این بود یه روز رو نرسیم مخاطر روز به بکنم نرسیم مخاطر اینشان بگیم که این روشت من عقیدم که این نهدی زیادی شده به هر حال چون من این روایت رو هم در کافی داریم با همین سنده هم. و در تحضیب از دو مستر مجموعش چند مصدر باشه در هیچ که روش نهده به اصطورت هیچ مصدری نهده و همین ببایت متنان سر در محمد نه امرار و جمید و امام قوم که بیوزو بوده تیمون بکنه یا با یکی دیگه روزو بگیره این همین مطلب دقیقاً